منجز نیست اون بحثی بی یعنی ما الان اصل اولین روز سیر اوغلایی در قوانین به طور کلی در مقابل این کسانی معترضن که نه تنجس یک نکات اوغلایی داره خوب دقت بکنید تنجس چون در میگرده به اعتبارات قانونی و بحث ما در بخش اعتبارات قانونی در بخش اعتبارات قانونی تنجس باید دائر مدار زوابت قانونی باشه ذابطه اجتماعی عمومی باشه ذابطه مند باشه این هم یک تفرکر این دو تا تفکر قرار می گیره دو سر قضیه است این تفکر حتی هر هم حسیت پیدا نمی‌کنه یعنی خاص وقتی حسیت پیدا نمی‌کنه اداره جواب باشه نه اینکه هر از هر حالت فردی پیدا باشه این تفکر دوم تفکر ثبت این حالات درجه بندی بکنیم مثلا بگیم خصوص قطعش حجیت میاره خیرش نمیاره قطعش هم حجیت میاره نقطه آمدن حجیتش رو تریریت و نورانیت ذاتی قطع یا ذات قطع چون قطع حقیقتش ارتباه با خارج میسه آینه هست رابطه قطع افاق نقص باخارش آینه با چون تو با آینه نشون میره حالا کار به بخش و دوزهنی و نفاس و صورت و حقیقته اون کار ندارد تمثیل بکنید چطور آینه یک صورت نشون میده شما در آینه فرصی دیوار رو میدینید در حقیقت نظرتون به دیواره نبیدن با آینه صورت ذهنیه شما در حال هم همینطوره این هم تفسیر معروفتری که در اینجا هست یعنی مثل از عبارات مثل شیخ و مرموم ناینی و آزیا و حضرت و استاد و دیگران این معنا بیشتر استفاده میشه پس حجیت یا تنجز یا حالا وجوب عمل. این دارمدار خصوص قطعه در زن و در شهر جایی نمیشه سر این که دارمدار خصوص قطعه هم هست این نقطه شید نقطه ازادی چون قطع تریریت ذاتشه این تنجزم دارمدار تریریت چرا؟ چون در طریقیت محضه شما واقعی میبینیم خب داریم میبینی که مثلا شما الان یقین یعنی داریم که مثلا نماز جمعه واجبه وقتی این وجود رو میبینیم خواهی های طبقه و عمل رو خواهی این از برزر یا این وجود مندگیت میشه بر شما در برزر تصور دیگه هم تصور مسئله در این حالات تراز اینه این نتیجه گیری نهایی چی شد؟ ما اگر بخوای اون صورت ذهنی رو به لحاظ حالات فردی بررسی بکنیم انتباع صورت ذهنی رو به لحاظ فردی تقریبا سه تا مبنای اساسی درست میشه این روشن شد یه مبنای که در جمیع این حالات خود جده یعنی احتمال هم منزده در باقی تکلیف احتمال هم است منزده باشه یا تکلیف مستقن یا تکالیف ایداری که به تبیر بعضی هم خودها گفت دو این که هیچ کدام از حالات سردی تنجز نمیاده حتی قبل چون تنجز یک قدیده اجتماعی خود جید قانونش قدیده اجتماعی برای که قانون و مرحله رایت مفتوز خودش که تنجز درسته باید در یک مریف و باشه حالات تغییر ماهو حالات فردی شدی ندارد. یکی قند داره که زند داره یکی شک داره یکی احتمال داره. هر کی میخواد حالات فردی. مثلا حالات فردی در ولی حالیه اجتماعی تغییر کرد. چرا؟ چون ما دیروز از کهیم هو جیه اساساً فردیه اجتماعی. دید. اصلا هو جیه فردی فردی نیست. اینکه حالا این فوق شما آمادگی ازشونی در جامعه ازطور میشه. فردی گوشی بیان نشده گوشی آریکه کافی انتخاب کرده این برای که این مسئله از هم مقرح نمشه پس بنابرای این در تنجز اون جاییست که در یک بسیار زمینه های خاص و اقلالی قابل قبول باشه حالت فردی هم اگر در بعضی جهات تأثیر میگذاره تأثیری در حد که به اصطلاعه مختصیه نه علت فرمه مثلا حالت فردی فرد زمینش برای حجیت بهتر از زمین ده حالت فردی خط زمینش بهتر از نمیده چون در فرشتون میبینی حجور رو میدونی ادهان ندار روشن کاملا روشن لیکن نقطه چیه چرا این علت کامل نیست کافی نیست چون از طرف که در موارد خط شما مصابقه با واقع نشده این یک در موارد زن افرادی که مزیقتن ممکن افراد سادلوهی باشه اطلاع دیگه رو متعارب می باشن یا زود برش پرشیدان می چون اطلاع دیگه در حسول این حالات متفاوت نمی تونید یک امر اجتماعی مثل قانون رو به حالات فردی با گذاشتن مطلقا می از حالات فردی زمینه درست کنن او از حالات فردی زمینه درست کنن اما اعتماده بر حالات فردی مطلقا نمی انجام اینجام چون همگانی خطا داره و هم حالات مختلف داره پس نتیجه این میشه که بنای و قرلا بر این میشه که نسبت به حالات فردیه قهره چون روشنی تمام داره طریقیت تمام داره این زمینه داره لیکن معضاله که میان این حساب رو میکنن میگه این قهره تو از کجا پیدا شده اینه سبرش شیه. از چه علیتی؟ خود این شخص چی کاره فقیر فقیه فقیه نیم فقیه ضعیفه فقیه قویه او درد ببند؟ منشه او رو بررسیم. اگر مناشه قدر به تصور ما تا حدود نوست درصدش اغلایی باشه در درصدش خصایت فرض باشه خصایت فرض دیگه چشکوچی میفن تو در درد ممکن 90 درصد پیش یک کسی قرصی یاد پیش یک کسی نیاده همون 90 درصد این 10 درصد رو چشم خوشی می کنن 10 درصد رو روش محاسبه نمی کنن پس در نتیجه خودجیت در این اساس درست می نه اینکه چون قرد کاشفی و قریقیت ذاتی داره این خودجیت خواهد بود نه چون یک پدیده اجتماعی خودجیت اصاسا پدیده اجتماعی و وحث در اینجا بر اساس قانونه این باید یک شکل قانونمندی در بیاد این اولا ثانیه خود شما ممکن است اصلا چرا حجت درست بکنه اصلا حجت نزده بگه همه سرپر اینقدر سوال بکنه، حتی اگه حرف داره باز سوال بکنیم باز باشن نفر مصرف ای کنه این مصرف بکنیم یقینی یقینی مطابق بواقع بشه دیگه شبهه مخالق بوده با, با واقع کیش ن این نکته این نکته رو توضیح توزید برند. این نکته رو ما به لحمه دیگری برم کردن آیا نکته جعل حجیت یک نکته درونی قفل اتکار شدیدش باشه یا نکته جعل حجیت یک نکته برونی قفل یعنی ای داره که بیان خجت قرار بده اصلا حجت قرار بده ولو قرار از کنیم انصافش این مطلب درستی این مطلب رو بیگه نه بیگه من سه مطرح شدن که این حجیت قدر از قبیل قضایی مشهور است که بنایه اغلا برونه هست که لغلا ها لختر در نظام من مطلب خودم رو به اینه بیشون نسبت ممکن است ممکنه سلابونشون جوری دیگه تفسیر بشه. به هر حال اصلا در کلام نیشون ما معتقدیم حتی در باب قدر یا در حجیت تسهیل بر مردمه ولذا همیشه هر نهر حجت حتی حجت جلی اگر رو سوشه، نقطه شده واقع حفظ جامعه نقطه اساسی داره من اینه یعنی میشه حتی هتا حجت نزنم یه سون که پنج بورا خییرا سوال کنین برسه تلفن بزنم باز اگه تلفن شکه کیسی جهاز باز سوال کنم باز بگم که رو انجام بدین که این ممکن یعنی ممکن زاون امکان هم داره اما جامعه رو به اندازه درست باید باید نه اگر این کشور همچون گفتن برو این قضیه سؤال بکن که این مصاحبه با واقع ایراد دارد. من مصاحبه نمی‌خوام که شش تا اثیلش بشه. نه کسی. ای. از واقع مصاحبه، زمان مصاحبه با واقع اول اثبات کن. مضمون با واقع، احترام مصاحبه با واقع. میشه این کار رو کنی؟ نه من میگم نمیشه. ایشیم می‌بینی ای یک جامه جامعه وقتی چقدر داده؟ یه دهه بیش نفری وقتی مشکل نداره. در جامعه بشری بر این اساس می و ظار جامعه بشری بر این اساس استوار سوال شد که برای گرفت جامعه یه نظار چیزهای به نام حجت قبول بکنه اینطبیی شد می این جقول و این در تمام جامعه بشری قبول میشه. ایننج یعنی مورد قاضی دو نفر اختلااص ابا مال من و که ماله بیش قاضی قاضی با مال ناد اون ناب نه آمد قبول داددن تا یعنی اطلا حی مخابق واقع باز بود دو پیش قاض میه باز این جامعه رو مختل میکنه یعنی اگر بناوش قول قاضی حجت نباشه خوب بحث می‌کنید این فلسفه خصوصاً نمی شه داره خصوصاً سر این دعوا همونجوری می‌مونه پس در هر جایی یک نقطه یه هست در بنظر ما اصلا چون بدیهتی که است یک نکته برونی وجود داره که اون رو می جعل می‌کنه جعل حجیت می‌کنه مثلا در باب قسط در بابا خبر واحد اگر حجت شد اون نفتیه برونی تسهیل عمره تسهیل عمره جامعه اختلال جامعه لازم نده و چون این اختلال از این یک محمر مطلوب اقلاعی است، وقت رو تمام آمدن یه چیزی که تماما بین تمام افراد بشر وجود داره اون رو قبول کرده، اونی که بین تمام افراد بشر داره که قبله اگر دیدن طرف با من قرط پیدا کردن فقط چیزی که هست از زواهر عبادیشه گفت قرط پیدا کردن تموم شد به نظر ما ها گفت قرط پیدا کرد تموم در شد داشین تو از کجا قرض پیدا کردی این منشه قطع تو چیه مناشه قطعشو اگر گفت و این مناشه مقبول بود ولو بدونم قطع اون مخالف با واقع قبول میکنن دقت حجت میکنه ولو ببینن که اون مخالفه چرا؟ چون اگر این کار رو نکنن هر جمعه تو اختلال نظام لازه میاد. مرمون نایینی آغاز بیان نگه نه نکته قبولش همون طریقیت قبوله طریقیت بودن اون بل هر که و نزا ایشلا ولی چون ناعی خوب این عنایت رو فهمید چون ناعی طریقت خاصو علت کجیتش می‌دونه میگه در ذهن هم خود فريده حج... بشناقسه اونم میشه مکمل بشه لذا معناو حجردان چی میشه اون طریقه کامل میشه می‌بینی چون ذهنش خلل طریقیات و خب حالا دیگه اونها تعریف بشه اونجا تعبدی شد اینجا رو ذاتی برار دادن توی از ذاتیه پس اینی چه حجیت و رو ذاتی میدونه حسن شد چون طریقیت و ذاتی میدونه خودجیت منوطه به طریقیت میدونه اون حجوب متابعت قصر رو منشأش رو چی میدونه طریقیت طریقیت و کاشفیت هم ذاتی پس این حجوب متابعت هم که ذاتی اون بست در مثل خبر باهزی هایی که زن آوره اونجا که تاکیلی طریقه ایش ناقصه اون رو میگه جهد حجیت میکنه لذا اسم این رو بذاشت حجیت منجعله قرد اسم رو اسم اون رو بذاشت حجیت مجهوله رو شد که مبانی کار از خوب این زرافت ها رو از همینجا در ذهن سون آماده الان آماده فکر بکنید تا مبنا روشن بشه آیا صورت ذهنی رو به لحاظه حالات فردی؟ مورد تنقیه و نورد تنقیه قرار بدیم نکته حجیه در چیه؟ مستقر ازنشد به این موارد این اینه اگر اصلا کار به اون سفتیت و تریجیات اینه بنده کلام بنده اینه که آن... क... خود هویت بری خزای از اگه فرض کنیم ما دیروزا صحبت این ماشین اشکالات اجازه بده ولی اخر وقتم هست باشه نه از کد از قبل حجیت اگر وجوب عمل باشه این تغییر اجتماعی نیست نه بی لازمه بحث لا لا لا اون لازم اون لازمه رو شما میفرمایید نه این فرض حجیت وجوب عمل کن بیمیدی روز تجیل هستی عبادت نالیه خون که دیروز عبادت نالیه به پس اگر حجیت رو خوب در خسته حجوب عمل داده این خرگیه در حالاقون میگه نه میگه چون شما ببین عزیزم هست میگه شما قصد پیدا کردین این ریزمانه طبق این عمل میکنی میشی قصد پیدا کردین این ماله فرام میکنی این وجوب عمل تابع اقت اقت کلیت تلیقیت ازادی این حجوب عمل ازادیه این ای خلاصه کلام ای بحث من چیه؟ حجیت این مبحث اجتماعی حجوب عمل نیست شما تازه این بنده نیستی؟ اون وجوب عمل لوازم حجیتی، بعد اون اجازه بدیم ما حجیت اول عاملی معینده حجیت یعنی تنجز قانون، انتباع صورتی از قانون، این حجیتی گرفتید نه نوزوم عمل و حجیت رو ایک دو اصل حجیت اصولم یک یعنی کہ طرح و طرح و حجیت معنا نداره اما وجوب عمل معنا داره فردی عالم مشتری اولیات و حجیت از این موضوع انا لا اعزل انا این مولای باشه تنها که باشه نیست احتجاج می‌کنی واقعا اون ها پس وا تکلیفی باشه آه. آه. اجازه داری؟ داره. پس حجج هج... اجاز آه. شما ما عنایت نمی‌فند پس حجیت وجوب عمل نیست نه من میخوام بگم حجیت وجوب عمل نیست تو وجوب عمل فرض داشته چه باعث می‌کنه اینکه شلوغ کنه چه اگر احتجاجش چی میشه اجتماعی بس حجیت میشه خریده اجتماعی. اگر شما خریده اجتماعی ذاتی کوش مانن نداره. چون اعتباری میشه به آن با. هوجیت اینی ما یه تجربی کلون اول آقام میشه اجتماعی. این ما را دارند. تکندر ما یه مثال سوگیری میکنه. یک باشگاه ها، چرا من است نشدی؟ چون ترجمه شد. کاملا هفته من. ویزا من موافقم. حجیت یک خریده اجتماعی و معناش عبارت هست. انتباع صورتی که تحریج بکنه اجازه دائی بکنه این حجیته نه زومال احمد زندگی نه. خوب زندگی فردی این اند... فردی بود حجه مانا نداره اون بحث تکلیف شرعیه ما بحث قانونی الان داریم ارز کردن اون بحث تکلیف شرعیه ما بحث قانونی ما یه به الارض علمولا عبدالمولا میدونم اون بحث شرعی و انبیاء و بحث دیگری اون بحث دیگری که در اینجا بحث حجیت طبیعتن چون یه تجویهی خیلی حال بحث نوزانه بردیگن پس تا اینجا روشن شد یک حجیت حجوب عملی حجوب عمل یک طبیعه فردی حجیت به ما یه تجویهی کلون از آخر یک طبیعه حقیقت این تایید اجتماعی تنجز اون تکلیفه یعنی یک صورت یه از در ذهن که ایجاد دایی بکنه حجیت حدش اینه ایجاد دایی در عرض در مکلف نه عمل مکلف عمل مرحله بعده ما تا اینجا رو حجت میدونیم ایجاد دایی اونیش که موجب ایجاد دایی این دو حالات ترضی مکلف خوب درد بکنیم یقین زن، شن این تو حجیت نیمتونه تأثیر بگذاره دلوقت دلوقت دلوقت دلوقت ها ها مرمون آزیان نایلی اینا آمدن میگن چون یک این کاشفیت جاتیه این حجیت رو از این کشف گرفتن یعنی به عبارت این اخرا این کاشفیت رو ما هم قبول داریم ما این که اون زمینه حجیت ما هم قبول داریم اشتوالشه علل عربیه مناسب و علل همون کشت. اینا ما قبول داریم فروش شد ما مخاطب این تمام علت نیست نکتیدت تسهیل بر مکلفین به حفظ جامعه نکته فن موضوع ظرافت خودشه اگر در نفی ده چون حکم مخالف با واقع میشه خدا سو وارد این فرض فقط صرفه جزئی ارزش نمیذینه جنبه این بحثو کم میذین که اصولا حجیت در حد هست نه به جعل و غلایی طسمو اگر حجیت جعل حجیت درو میدونیم خب ماهیتش با ماهیت زن فرقی نمیکنه فرقش اینه هر چیزی که آمنه اغلا قبول کرده، زن قالبا یک تایفه معین قبول میکنه این فرقشونه مثلا فرسون خبرواه فرسون به نظر مسلمان ها حجته یا به نظر هندوها ها مثلا به ممکنه به اجتماعات به جامعه ها فرق بکنه اما مسئله قد فعلا یعنی ما اینو با عنوان عقل نظری میگیم نه حکم میکنیم اونی که ما در زندگی عقلا میبینیم اینه زندگی عقلا نه زندگی عقلی نه فکر اعناب نه قانون علییه اونی که در زندگی عقلا الان داریم میبینیم اینه اگر کسی برای او قهر پیدا شد و نقش مناشه عقلایی داشت اون رو قبول میکنن نمیگن چرا نرفتی ببینی مطابق هست یا نه تضمین مطابقت از اون نمیخوام. روح اعتماعز میکنم پس خودجیت ذاتی که آن گفتن ما نداریم مگر مرادشون زاد زاد. ما کل ما به در عرضی انتهیل ما به ذات یعنی ما ها به مقبولون کل یک مقبولون این کل داریم یک مقبولون این در داریم زن و نمتونم حالات اصول عملی اونو مقبولون این در اما هر مقبول این در کل حالا یک جامعه پیدا بشه افراد شاذی باشد بگن نه مثلا از ما محدود هر کی که مطابق با واقعه باید اینقدر سوال و تحقیق و تفحص و فیلم‌ها نگاه کنین نگاه از اینجا بکنین یقین یقین مطابق با واقعه ممکن چیزی ندارید این مطلب این است که مستعید باشه اما اون که ما الان از سیره اوغلا میفهمیم اینه در سیره اوغلا در کشف و حق نه موضوع خارجی کی مخاطب هوک رو نسبت داده؟ اما شما گفتی این ماجرا و امسال مثلا ده درصد کم کردید خب این از کجا گفتی میگه این روزنامه تو این روزنامه نمیشه میگه بله تو روزنامه نوشته اشتباه نداره اما این روزنامه اشتباه چاپ کرده اما این اینو معذور میدارن خوب دفاع این اینو معذور اگر بگه من یقین داشتم و مناشه و غلایی برای یقین بود او معذور است این قبول داره حجیت تمام حجیت هست برش. بلکه مطلقا اینطوری که مرحوم شیخ و دیگران این روشنایی نداره چندان روشن به نظر نمیاد پس اصل حجیت یک تئوری شمایی است حتی حجیت غرض هم حجیت اوغلایی است نه به حکم عقل و منشأ حجیت هم یک نقطه برون از قطع نه در درون قطع که کاشفیتش باشه کاشفه ای زمینه حجیت تاکید داره فقط تاکید داره اینکه کاشفه کامله این کاشه ناقص باشه اما این زمینه سازه هست. خود زمینه سازه هجیته. خود حجیت خود حجیت